اللهم برحمه و و لله رب And in the end of the ولي بعضی از موارد اختلاف ن فقها در مقام افسا تردید دارند قائل به منجزیت بشن یا نشن و این تبدید از یک ابهامی در مبانی که یقینا یه هست که منقطع نشده و سر از این پرف در مقام افسا درمیارند اینها در, این در مواردی که یک حدثی مرد بین دو نفره اختلاف دارد دا که آیا حدث برای هر دو ثابت تهیه ثابت نیست؟ و همین تردید کار که یک مبنایی هست که اون مبنا پوب تندهی نشده و ماهی که در کلمات مصنف آرها این شده معذاله باز همینطور مجموع میمونه و موقع میشه به وحث های بعدی با اینکه میشه انسان یک تفصیلی رو نسبت به احکام شریع استحصال کنه از خیلی از کلمات به جمعه کلمات در جلد سوم صفحه سی سد و که یادم نرفته باشه شب داشتن میدیدن که ایشون قایل شده بعضی از موارد ما حکم موضوع نمیخواد بعضی از موارد موضوع میخواد و این همون برگشتش به انوانی و ذاتیه و مصطفا بحث کرده در اطرافش تعبیرات تربیرات فرمان تعبیر به انوان و ذات ولی شبیه همین بحث هست. جلد جلده سپوم سمتی سی ست و نوزیه ببند و خیلی از کلمات دیگه از خود آزیان هست و محقق خراسانی هم در حاشیه رسالت داره خود مصنف هم در همین بحثها داره که جمله میاد انها رو منتعا نمیتونم به نتیجه و جزبی می و این شاید بهخاطر که خوختگی لازم رو این مبنا پیدا نکرده هم. و الا اگر بنا باشه یک اختلافی باشه به اختلاف جوهری باشه یقینه و به یک سبری عملی هم در مقام افتاق برسه حالی نرسیدنش یا تردید در رسیدنش اینها به خاطر به تنقید این مبناست و از احکام به دو قسم انسانی و ذاتی واقعیه که از موارد موضوع محدده و از موارد موضوع محدد نیست در موارد موضوع محدده حقوق ذاتیه میشه لزا در موارد اختیار و همسال اینها مییه شرط نیست ما بییایم بیم شخصی که مرتکب قتل شده اختیار نداشته اختیارم نداشته باشه باز مسئولیتش بر عهده این شخص و از این زاویه گفتیم اون شروعط امه که در میارن بحث میکنن مثل اختیار اینها بعضی از این موارد حیثیت تقینه است و از یه تعلیلیه یعنی انسان ها مکلقه به این تکالیف هم که مختار اینکه هر تکلیفی به به فقیلیت برسه با مختار باشه و امثال این های که اینو شمعی از این مواقع رو در اون مرگ مرزی مطرح کردیم سابقا هم این سال هم گفتیم و اینها واقعیت فقیه علا کل حال تعدیه از حجیت زهورات هم نیست یعنی قایده اوغلاری هرشهی بخواد به حجیت برس باید معلوم ما باشه ما چیزی معلوم ما نیست حجیت زهورات هم حجیتش بخواد معلومیت شدیه چیزی که برای ما معلومه یعنی ظاهره ظاهر یه یعنی حجیت داره حجیت داره یعنی معلومه حجیت یعنی زهورات بخواد به معلومیتش ما به اندازه علممون ما اکرم العلمه براما چقدر معلومیت داره ظهور داره به همون مردار مکرده و طیم من سعید با چقدر ظهور داره یه یعنی چقدر ما معلومه همون مقدار تکیف داره قضا وجه در حاجیت زهورات همون معلومیت هاست اون معلوم ماست موضوع فعلیت رسیده با فعلیت رسیدن موضوع حکم فعلیت فعریتونه ولی اگر زهورات نباشه یعنی چیزی برای ما معلوم نیست خیلی از آیات متشابه قرآن اونا برام ما معلوم نیست زهوراتی حساب نمیشن زهورات نیستن و محقق قومی کار فراتر گذاشته خواهی شده به یه تمام قرآن اینطوره. ما نمیفهمیم این یه یعنی کدام از آیات بر ما معلوم نیست حتی محکمات و قائل به این فهم قرآن در شخص نبی مکردن اسلام و امثال این از نظریات دیگه مهم ذهنیت سازیه حالا چطور ناینی ذهنیت پیدا کرده شما خیال از بیشتر درس خونده از آغازی ها که از مهمت اول ولی یه ذهنیت های داره اون ذهنیت ها فتاواییشون رو خیلی زود ترسیم میکنن در مواردی خیلی اختلاف دارن نایینی زودتر میتونه فرضیه بده میگه مبانی خیلی خیلی فنی داره بعضی از موارد مبانی غیر فنی داره که دیگران نمیپذیرن به نظریه مطمئنی حالا مهم اینه که از این مباحث اونیا ذهنیت پیدا می‌کنن بحث ما منتحی شد در این مخالفت التزامیه و موافقت التزامیه، به این که ایشون قائل به عدم وجوب موافقت التزامیه. منتها بعضی ها, ها من کردن خیلی کلماتشون مطلب اون اطلاق رو هم کرد برای اینکه اونا گفت اگر مستلزم مخالفت عملی به باشه نمیتونید برطرف از جاری کنیم اشکال و اشکال نداره جریان اصول مانع ذاتی که نداره مانع ارضیه یعنی اون به مخالفت عملی اگه شما در اطراو ویمادی بخواید قائل به ترخیص مطلق بشی و این مستلزم مخالفت عملی باشه نمیتونی و دیگه مستلزم مخالفت عملی نیست اشکالی نداره و آخرش در اون صفحه یه یک فرموده نه هم ظاهر و دوران در بینم وجود و تحریم از اتفاق و علاها عدم وجود در دوران هم بینم محضوره در دوران هم بینم محضوره. یا واضحه یا حرام. دیگه اتفاق دارم برای اینکه نمیشه قاعده به باهای بشه. حالا در همین وجوب تحریم چی بگیم؟ خودشون اختلاف دنن و این اختلاف بین قاعدن به تحریم بین موجود تحریم اختیار بون یکیشون یا قاعدن موجود باشه، دائمان یا قاعدن تحریم باش دائمان نماز جمعه واجب یا حرامه یکیشون باید انتخاب کنی منش به تخلیر ابتدایی و قاعدن به تعینن اخصد به حرمت دائمان آجان قایل به تعینی اقصب به حرمتن طرف حرمت رو بگیم قاعده میگه اون ملاک مفاسد قوی تر از ملاک مصابقه داد طرف حرمت میگه بگیم بوده و مرسومه ولی من انصاف انه لا یخلو ان قوتن لأن المخالفه العملية التي لا تلزم في المقام هی المخالفت و و في واقعت واحده مخالفت عمدیه که در موارد، چون گفتن در موارده وجود و تحقیم آقا مخالفت عمدیه لازم نمیاد شخص یا قائل یا که دیگه مخالفت عمدیه پیش نمیاد. ایشون میگه نه اینطور نیست اگر دفعتاً واحده باشه مخالفت عمدیه لازم نمیاد ولی اگر دفعات متکرده باشه لازم نیان اینم مخالفت الاملیت التي لا ترزم و مقام یعن مخالفت و و فی واقعت واحده و اما مخالفت الاملیت و تدریجیه و فی واقعتین او اکثر فهی لازمتن حتما ما بیاییم یه بار از اینا آقا تقرید کنیم قائل به وجود بشه انجام بدیم بعد ادول کنیم به یه مرجع دومی اون قائل به حرمت بشه ترف کنیم یقینا مستلزم مخالفت عملیه شده و این جایز نیست لذا یکیش رو باید انتخاب کنیم این واقعه واحده و واقعتین به این معناست که اولش باید یکیش انتخاب کنیم یا قائل به وجود بشین تا ابد یا قائل به حرمت بشیم تا ابد به که واقعته کردیم یه دفعه اومده می رویم شدیم یعنی وجوب رو یه دفعه حرمت رو این درست نیست به این تصامحه در تعبیلیشون واقعته و واقعته یعنی تخییر اتدایی باشی استمراری باشه. آیا شخص مجازه از این مرجع روی دلکنه دومی که اختلاف نظر داره ظاهر تعبیلشینه که نمیشه شخص نمیدونه میتنیست داری چیزی داری بزاوتی ها آنه باونیست آنه از مرکز لعن در مخالفت الاملیت دلتی لا ترزم مخالفت فیل مقام مخالفت یعنی اگه ما یکیش انتخاب کردیم یا وجود رو یا حرمت تا آخر قائل به موضوع رو نماز جمعه شدیم و هر هفته رفتیم خب مخالفت عملیه یه لازم نمید قائل به حرمت شدیم و هیچ موقع نرفتیم مخالفت عملیه یه قطعیه لازم نمیاد ولی اگه اومدیم یه هفته رفتیم یه هفته نرفتیم. از یک از یکی کردیم قائل به وجود بود بعدا ادول کردیم به شخص دیگه قائل به قرمت بود در این موارد یقینا یا یعنی مخالفت قدیه عملیه و اما مخالفت تدریجن و فی واقعایت این فهیه البته از این برگشتش تفسیرن به تخییر ابتدایی و استمراریه تخییر ابتدایی باشه استمراری باشه ظاهره که شیخ شیخینی که تخکیر باید امتداری باشه بقید اول یکیش انتخاب کن تا آخر وقت این روی ما میتونیم قائل بشیم یا نه عبدا نمیشه ما به شرق از یک نفر باید تقلید کنیم شما حق ادود به مشتهید دوم نداریم در مسئله تقلید مشکل درست میشه و ابلوک ما یخوم به قبه مخالفت دفعتا انقن و اندن کهال که یکوم و به حرمت مخالفت عملیت فی واقعت تدری جن انقن الیها ها من غیل تبددن به حکمن سال سن ظاهری اندقل بدون اینکه که تعبدی از شب ما رسیده باشه که تخی شما استمراری. از این تغییرات من اینطور دارم ترجمه میکنم. زهن شریف این باشه من غیر تعب بودن به حکم ظالث ظاهری که تخییر استمراریه مگه شاره بگه تخییر استمراریه شما مخیری مطلبان و این ایزن فیض به حکم العقل الالتزام بلفد دائما عوض ترک دائما ازفی عدمی عدمین التزامین طوری ارتکابون لما و شاره دشاره یقینا انقصدن و علم و این گناه حالا تعدد واقعه مشکل رو حل میکنه یا نه فرموزه تعدد واقعه اگر با اذن شاره باشه مشکل رو حل میکنه به فی نفسه مشکل واقعه و تعدد واقعه یعنی تخییر استمراریه این نمای یو فی دفع المحزور من از ن من شعر این ذکر نماغاتین به تأکید به آن که ما فی تخییر شعر المقلد بین قوای المجتهدين تخییرا مستمدلا یا جوز معه او ارجوآن عهده ما ادالاخره شده در هر زمانی از هر کنون بر تعلیم اون برای شما چی؟ و اما عدم اذن اشاره بل مقدم على ما هو و مفقوز ل اشاره و عقلا الا قابه على ذكر زالکن اما لو انتظم باحد الاحتمالین قب وحقابه الا مخالفت الواقع لو تفقد ولی اگه یک ایدو گرفتیم یعنی تاخیر ابتدایی بود اما لبه تزمه به عهد لبتدا احتمال این دائمه یعنی تأخیر بدی بود این قبعه اقابش بر مخالفت واقع معواردی که اتفاق میفته حالا اگه قائل بشه ولی این قبعه مخطع قائلن به عدمش دیگه لذا قبعه اقاب علا مخالفت واقع لبه تفاقه این نه مثلک تصویبه نه مثلک بلکه شبیه مسلحه خودش در مسلحه سلوکیه و یونگن میکن استفاده در طول حکم و اخبار تخییر اندر تارز این حکم رو میشه از مفهوم اخبار تخییر اندر تارز هم میتونم استفاده کنیم که شخص به چه نحوی مخیل باشه تخییرش بدوی باشه یا استمراری باشه اگه ازنشاره داریم بعد تخییر استمراری خوبش کال نده و ادتا تخییر علاقه قاعده باید بدوی باشه لیکن نها در کلام لایجیف شبهت الواحدت اللذی لم تتعدد فیها الواقعت و حتی تحصول مخالفت العملیت و تدریجا فلمانه و فلحقیقته یا مخالفت العملیت القطعیه ولو تدریجا معادم التعبد به تخییر استمرانی این تکرار هم ما سببه فتح عمل جیدن که تنها مانه که لازم میاد از تب اجدای و سو در اطرافه مجمالی مخالفت عملیه مخالفت اولی لازم نیادش مشکل نداره. آزا کل لهو فی المخالفه القطعیه من حيث الالتزام. یعنی مخالفت التزامی حرام هست یا نیست؟ ده ان لا یلتزم به او یلتزم به عدمه فی مرحله الظاهر اذا قذت الاصول و ذلك. این نهایت هست در مخالفت التزامیه. ایشون نافیه. مخالفت انتظام بیار و وجود بشید و اما مخالفت عملیه مخالفت عملیه دو قسمه یا مخالفت با یک خطاب تفسیریه البته در مبایسته ið یا در مبایسته ið باز خودش دو قسمه یا مخالفت عملیه با خطاب تفسیریه یا مخالفت عملیه با خطاب اجمالیه و اینها تفاصیلی داره تفسیر خطاب تفسیلی اینه که اشاره فربوده اشتن بن النجس و این نجس مرتد بین دو فرد، سه فرد و ده فرد. این اجمالی مرسوم. که اشتن نجس النجس، این نجس مرتد بین افراد و اطرافیه. این میگن خطاب تفصیلی. خطاب تفسیلی یعنی خطاب معلوم به تفصیل که اشتن از نجاسته، چیزی دیگه. ولی بعضی از موارد خطاب اجمالیه. خود تکلیف مردد بین دو چیزه شارای گفته انده حلول حلال دعا بخون یا انده زبان نماز بخون کدومش گفته ما نمیدونیم آیا ما امر به وجوب شدیم یا امر به اشتناب شدیم نمیدونیم یعنی جنس الزام نوع الزام الان مردد اجتنب انه نجس صادر شده یا اجتنب انه اجنبیه کدومشه ما نمیدونیم و این حسیل و اتفاق در مباعث فقیه به خاطر تعالیز روایت کدومش سادر شده آیا این روایت صادر شده یا اون روایت سادر شده این آوردین طوری داره بند میکنه. لذا این بحث فعلی مرتبط میشه به باب تعارض. در باب تعارض همیشه ما مرددیم بینید اینکه کدوم خطاب صادر شده رو بگیریم طرف مجور رو بگیریم حرمت رو بگیریم این اجتناب رو بگیریم اون اجتناب رو بگیریم و الان ما خطاب تفسیلی نداریم دو خطاب یا سه خطاب در ابغاز حج و نکاه میبینید ده تا روایت ده تا رو گفته ما کدومشو بگیریم بله موضوع بگیم در کدوم با؟ در واژه تعارض، تنهای برن موضوعی یا حکمیه که یک موردیو هم به علاوه این کتاب مرجعی که جریان به کتابی هم دیگه بعضی از موارد ما نمی‌دونیم در قضای ماه رمضان. ما, ما معمور به فدیهیم یا معمور به کفاره؟ کدوم میشه؟ خب یکی روایت گفته فدیه، که گفته کفاره. کدوم میشه بگی؟ کدوم احداث شده لذا بحث صدا صدوریه در این بحث ایشون داره مطرح میگونه صدورش معلوم نیست. تا چه رسد به وصولش خطاب اجمالیه کدام روایت از این دوره روایت احداث شده خب اینم از ابحاث علم اجمالیه ولی مرتبط به باب توارث قاعده ای داریم توارث حلش بکنه یا نه اگر مرتبط به علم اجمالی باشه یقینا یعنی باید یه قاعده باشه این حلش کنه ما آیا عن الخمر رو بگیم صادر شده یا اجتنبعن قصد کدوم شده علم اجمالی داریم که یکی سادر شده دیگه از موارد اجمالیه همین اجمالی پیدا کردیم چون یقین داریم که یکی ساده شده یقین داریم بگیم یکیش ساده شده از علم المجماریه علم تفصیلی نیست که بگیم هر دو ساده شده نه علم المجماری داریم یکی ساده شده یا حرمت خم یا حرمت دست کدومش رو بگیم این شخص الان مکلف به اجتناب از خم یا اجتناب از دست من واقعیش قبلش گفتم الان شاکی که ماه رمضان رو روزه نگرفته مریض بوده فدیه بده که کار داره به اینطور موضوع دو تا ربایتا. دو تا روایت هستن اینجا الان که طرفی یه چیز همون میگه چرا الان تعارض داره؟ چون ما علم اجمالی داریم که یکیش نفر هر دو فدیه و کفاره با هم نیست یعنی نه یکیشه خودمشه اینه یه خطاب اجمالیه لذا از مباحث باب تعارضه چطوری اینو حلش کنیم اگه باب تعارض باشه مرتبط به باب علم اجمالی باشه نتیجه چی میشه؟ ما به این حرمت خمرانان الان که حرمت قسمه. علم اجمالی در مکی یکیشه. خطابی علم اجمالیه. دیگه، بله، علم اجمالیه. حالا اینا تو جزوه نفسی کردیم، خطا به اجمالی زن معتبر ایشمالی هم همون علم هم. نه یک علم قطعی چیز داریم که یک ولی مرددیم بین دوتا فیدیت یک الان ببین یکی از مسائل واقعی که نیاز به تخصیص داره امرأت المفقود شخصی گم شده زنش چیکار کنه زنش چیکار کنه این عدیه طلاق بگیره عدیه وفات بگیره مردد مثال واقعی هم اینا. الان شما این پول رو چی حساب میکنیم پولها سکه حساب میشه به کاغذ حساب میشه این ایران چکایی که هیچ اعتبار نداره کاغذ محض بدون پشتوانه چاپ میشن این پنجزاتومانی هم اینا چی هم؟ مقابل یه ایران چکای 100 چرا پشتوانه داشت ولی اینا هیچ پشتوانه نداره الان پول باز پشتبانه داره ولی این چکای 5000 تومانی هیچ پشتبانه نداره دو سه بارم رئیس بانک مرکزی تمام شد اینا رو جمع کنه هنوز جمع نشد و میگن چرا تورم؟ چرا اقتصادیطوری؟ خودشون رو اعتراف میکنم ما نمی‌خوایم اینا رو جمع کنیم میان میگن باز میاد یه شش ماه پیداش میشه یه به چه مجوز از چاپ چاب میشن خب این ها ما پول حساب کنیم یا نکنیم چی بگیم اشخاصی که این پنجایزار تومان یاد دارن کمس بهش تردق میگیری یا نه نمیدونم مرده مسئول نداره خدا میدونه یعنی هفتاد درصد جاها مسئول نداره وقتی اینا هست این نفر باید اونجا بشینه درستش کنه به بگی بگیم آره اینا رو چی حساب میکنید؟ یعنی الان این پول ها تو استفتاد هم میاد تو استفتاد میاد از مرموهای تبریزی و ما پرسیدن اینا خمس زکات چی؟ تعلق میگیره پول ها شخص برای فرار از خمس میتونه پول تبدیل به این ایران چکای کاغذی بکنه به خاطر که ما علم داریم که خمس تعلق میگیره به منافع و این یعنی منفعت هست یا نیست ما رفتیم چیزی رو خریدیم فروختیم سودم داره ولی به ما ایران چک داده منابرای تفریقش حالا اگر کسی قائل به تفریق نشد گفت نه اینا اعتباریه. اعتباری اعتباری باشه هیچ فرقی با پول نداره با سکه نداره اون حسابش اگه اونطور باشه یه لازمه دیگه داره که حتما باید خمصش بدن حتما زکات هم بهش تعلق میگیره بلاشه. ولی خب اون منتظم نیستن زکاتش منتظم نیستن مباحث خیلی خیلی پیچیده الان این بحثا رو ما ها میتون خیلی راحت بخونیم از روش بره ولی این ذهنیت باید پیدا بشه الان این زن شخص مفقود وقتی میگن اختلافیه این اختلافش فقهی و سوریه قبل از اینکه فقهی باشه باشنه و سوریه اجمالی داریم یه روایت داره که این اددهی وفات بگیره یکی داره اددهی طلاق بگیره حالا چه حکمتی بوده در صدور این روایات متعارض به تمام معنا هنوز من بهش نرسیدم که واقعا چه حکمتی بوده تا عارض ست بین روایات خب الان ما درگیریم یعنی یکی از اطلاعات فقها و طلاب الان همینه ابتلای که از ابراهیم داشت به منجنیق ولی ابتلایی ما هم همینه ما گرفتاریم به حل اینتها رو زد مثلا شما حاکی میخواید فقیه بشید یا چطور حلش میکنم برای زن مفقود چی میگی؟ دیگه چهار سال سب کنه هفتاد سال سب کنه حاکم شر علاقش بده بعد این حکم مال خودشه مال اموالشه مال بچه هاشه چی بگیم چه اگه چیزی بود که بگیم در جواهر نوشته میری میخونه خوب میشه اونجا نمیومده یا اینطوری حل نشده ولی میشه یک ذهنیتی از همین رسائل مکاسب بر آقا این پیدا بشه دنبالش باشید اینا حلش کنید چه مسئله پول که اگه یه طرفش بگیری یه طرف دیگهش میلنگه ماگه ما قایل بشیم که آقا اینا همشون پوله خب زکاتش و چرا نمیدید چون اگه پول باژن پشمونه طلب و نقده داره خب پس چرا قاعده به ذکاتش نیستند این نیاز به تنقیح داره لذا در مخالفت عملیه وارد این بحث فنی شده منتها خوب عذاب در نیآورده سوری بحث شده مخالفت قائل شده بین یه بعضی از موارد مخالفت با خطاب تفصیلیه همین علم اجمالی مرسوم اشتنه بن نجیس و این نجس مردد بین دوتا زن علم اجمالی داره یا امروز حیزه یا فردا حیزه و میخوان طلاقش بدن الانم خون دیده این حیز یا حیز نیست چی حساب بکنه و هزاران مسئله دیگه الان این سرات و نجات مرمه تبریزی که ده جلده نگاه کنید تمام این مسئله شما باید بتونید جواب بدید میتونید همه اینا مبنا میخود و خلاصه شده در دو جلد با نظریات آی خویی جمع شده سرات نجات دو جلدی بگیرید و یکی دو دور اینو بخونید و لازمه که شما جواب همین سوالا رو پیدا کنید و مبانیش پیدا کنید الان اگر از شما بپرسند در رابطه با زن مفقود خب شاید عذری باشه ولی دو سال دیگه شما عذر ندارید جواب نتونید بدید پس مخالفت یا با خطاب تفسیلی یعنی همون علم اجمالیه مفصول. یا با خطاب اجمالیه که سر از باب تاروز در فه اینکاند لخطاب خطاب فز ظاهر و عدم و جوازه ها ذواب اکانت فشبهه الموضوعیه کترکاب الانائین المشتبهین مخالف قول شاره تن بل نجس علمش ولی ف او فشبهه حکمیه این اضافه کنید ها این ساقط شده از نسخه ها او فشبهه حکمیه کتر که قصر ول اتمام فی موارد اشتباه لحکم در شبهات حکمیه من یه جای دسیدم نمیدونم مسافت هست یا نیست نماز رو تمام بخونم یا قصد بخونم در خارج از رواق حسینی و حائر حسینی نماز رو قصد بخونم رو تمام بخونم اصلا حائر کدوم قسمته وقتی میگن حائر حسینی حائر یا یعنی خود شهر که از بلاست. یا خود حرم یا داخل رواقه کدومشه اختلاف علام 1400 سال هنوزم حل نشد واقعا ما اینا برای ما حل بشه دیگه آخوند سی سال عمر اومده تو هتل نماز رو داشت تمام می خارج از مدینه اون زمان طب چه مبنایی واقعا اشراف نیست بر مساعد اگه باشم در همون فرش های سبس دیگه خارج از فرش های سبس که نمیشه یه اونو مسجد ساکنیم و بگیم باز شخص مخیره یا اتمام اولاست اینا نیاز به نظریه پردازی داره یه اشرافی باشه ما بتونیم به هر چی مبتلا میشیم خودمون حکمشو بدونیم تا اینکه قبل از این که دیگران از ما بخوان چیزی بپسن اوفی شوبه حکمیه که که قص و اتمام در موارد اشتباه هر یعنی شوبه حکمیه باشه شخصی بیاد نه به بخونه نه تمام بخونه در خیلی از موارد می‌بینیم طلبه‌هایی میرن به تبلیغ خب ظاهرا در روز و داره دیگه ولی می‌بینیم خبره مییارن برای نگهداری منبر تو باید منبر بری کسی بیاد اینجا قیمت کنه اصلا میخوایم یا نمیخوایم ولی برای مداحین نیست. مدده میاد خبره نمیخواد یعنی برای آخوند خبره میفرستن این میتونه منبر بده منبر چند میردن میگن آقا ما به این منبر شما در این ده روز سد هزار تومن هزار بیشتر نمیتونه بده نهایت افول دین و مکتب اسلام شخص مردده نمیدونه ده روز اینجا میمونه یا نمیمونه چی بخونه قصد بخونه تمام بخونه اگه اومد هر در رو ترکت کرد یا یک طرف رو گرفت جانب اطمام بگرفت بعدن این کشف که نبوده باید قصد میخوندی یا قصد خوند بعدن معلوم شد که اتمام بوده خب این اشباهات حکمیه این علم اجمالی محسوم ولی قسم دومشه این رو گفته فضاهر در دمو جوازه ها چرا ظاهر گفته شون به حکم عقل چون به حکم عقل مستند به منطسیت علم اجمالیه لأن نظال که لذلك الخطاب تفصیلی المعلوم لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الانائین مفروض اینه که اجتناب واجب اغلا و وجوب صلاة زهره و الاس قصرن او اتمامن و لو قال اکرم زیدن و شخصه شخصهو بین شخصین زید اکرام حالا زیده ابن عرقم بوده یا شهزم بوده نمیدونی و این نتر که اکرامه ما محصیتا فا این قول ازا اجره اینا از تهارت فی کل من ال و اخرجنا ما عن موضوع نجس به حکم شاره فلیسف به ما مخالفتون به قول شاره که بن نجس حالا این آقا گیز داده به اینکه اجتناب امن نجه یه وجوب اجتنابی آورده ولی ما با اونم یه قاعده تهالتی داریم قاعده طهارت كل شیء لکن نزیف این کل شیء تمام اطراف المجمالی هم میگیره یعنی هم شبوحات بدوی رو میگیره که شک در طهارتش داریم و هم شبوحات محرم المجمالی رو میگیره لذا قاعده طهارت رو بگیریم یا این حکم عقلی به وجوب اجتناب رو بگیریم وقتی قاعده تهارت به عنوان قاعده تمام و میار تمام ثابت باشه قاعده تهارت وقتی اجرامیش در اطراف مجمالی دیگه مخالفت با قول شاره نیست چون خود شعاره فرموده که کل شکل لکن نزیفت تا تعلم انهو بزار و ما علم به قضارت نداریم در هر طرفی، احتمال میدیم اینو چی جواب میدیم قول تو اصالت و البته این قاعده چهارتی و اصل چهارت خودتون باید بحث کنید قاعده ی حساب میشه اصل تهارت حساب میشه این نیازه تحقیل داره یعنی اگه قاعده تهارت یه قاعده ی باشه اصل تهارت اگه قاعده ذاتی باشه قاعده ی این اختلاف جوهری بین اصل جوهری قواعد همیشه به ذاهر میخوره میگن اگر زن حاملی خوف از سخت جنین داره روزه نگیره این قاعده است یا اصله یعنی خوف واقعی یا خوف احتمالی هم همینطوره بنا اختلاف درش هست محقق ناینی در سواهدش متعرضه واقع خوفه واقع خوف وقتی ملاد باشه، یعنی احتمالشم در این موارد هست اینطوری نیست که ظاهری اقامه بشه یه بگینه یه زواهری یه قرائنی نه واقعش واقعش از کجا به دست بیاریم احتمال خود انسانم کافی در اینکه واقع راست بشه زن یه احتمال خوف بده نباید روزنه بگیره نیاز به نظر متخصصم نداره بگیم حتما دو تا دکتر متخصص بیاد بگه شما نگیر نه اصلا نیاز نیست چون ظاهری ملاک نیست واقعش ملاکی اگه ظاهر بود میگفتن بیینه قامه بشی بیینه بگه آقا روزه نگیریم اینا قبل از, از ماه رمضان دیدید دکتر هاشولق میشه که یک زخم میده چیزی پیدا کنن بگن ما روزه نمیگیریم اینا نیاز نیست اگه خوف خوف احتمالی خودت حسابه اگه ظاهری آره بیینه این ها اگه برای عوام هم چیز باشه برای خواص از حساب نمیشه یا آخوندی اون رو زنگ زده بود میگفت یکی سر سال خمسیش رسیده خونه که فروخته برای اینکه خونه بخره هنوز نتونسته خونه بخره شیش هفت ماه نتونسته خونه بخره میشه این سال خمسی رو یه ده روز قبل بندازی تا این زود خونه بخره خمس نده یعنی عوامیت به توان این کدام میدونه یعنی سر آدم سود میکشه اینا چه آخوندی بیان مساجه تو کیا داره این داره یعنی چی موزه که به تمام معنا که شما ده روز سوال خمسیه من تأخیر بندازم که ما تو این ده روز کنه بخریم این حرف از یه دکتر ما بشنویم مزخرش میکنم از اونها که در فرمولهای شیمی و ریاضی و اینها کار میکنن از این حرفا میزنن ولی ماها میزنیم یعنی چه. سال خمسی رو ترخیل بده اگه دست ماست ببین اگه اونطور بپرسه آدم توجیه اگه اونطوری بپرسه مهنه بیا اینطوری بپرسی خیلی بده نزید یه زنی داره وضع هم بکنه بهش بگی نه شما یه ده روز دیگه صبر کن وضع هم نکن تا اینکه. ما خونه بخریم تو خونه خودمونم بچه به دنیا بیاد و امثال این ها یعنی به سوال ها فرمیشه طوری بپرسی اصلا شاید هم اصلا قراز و شمینه ولی نحوی سوالش به یه درس من خب این رو میشناسم یک روز تو عمرشون نکندم. نخوندم بده خب کارشونم هم بیش میده دیگه ولی انصافه الان در این موارد اصالت و تهاره ما قاعده به اصل بشیم و قاعده بشیم قاعده تهاره بگیم یا اصل تهاره بگیم یه شیعه عنوانیه یا ذاتیه اینو تحقیل کنن آقا این تا شنبه اصالت و تهاره فکرد من هما بالخصوص اینما یوجب و جواز ارتکابهی من هیس و نفسهی اصالت و من هیس و نفسهی و ذاتهی بین حیص و هوا پاک. ولی اگه معارض با یک علم قطعی اجمالی بشه به نجاست فعل بین، آیا باز از تهالات میشه؟ و عمل اناون نجس الموجود بینهما واقعاً فلا اصلهت الا على طهارتي. این قاعده نیست که اون رو بیاد پاکش کنه. این اصل زورش نمی‌رسه در موارد علم اجمالی هم جاری بشه. فلا اصلا اگرقل در نهون عجون ینین خلاقات به ما منتننا به ما تحصیل لل موفقت قطیه به ماش تنند اهما به فقان لممنند میرزقومی فراررا از مخالفت قطیه ال خلاف بچکول معند حضا تمام کلام در تریب کلام مشهور مع نهک مشاره. به خروج مجدل اصل ان موضوع تکلیف ثابته بالعدلت اجتهادی لا معنا له الا رفع و حکم زالک الموضوع و مرجع و اصالت طهارت اله عدم الوج... وجوب اجتناب المخالفه لقوله قوله اجتناب عن النجس یعنی مرجع اصالت طهارت التهاره... به عدم وجوب اجتناب که مخالفه با اشتن بن نجیس اگر شخصی بیاد بگه در موارد شک در اینکه یه نجیسی فیل به هست اشتن بن نجیس این موارد رو میگیری یا این هم تکر منجزیت ابلیه یه بعد بیان میگه مثل طهارت جاری کن میگه جاری نمیشه به خاطر اینکه شبهات یا شبهات موضوعی هستند یا شبهات حکمیه در شبهات حکمیه اصول تلخیصیه مثل معارض و منافی با اون معلوم به اجمال منجزه نمیشه ولی در شبهات موضوعیه چرا میشه اصول ترخیصیه در شبهات موضوعیه جاری میشه زنی مردد بین زوجه و اجنبیه است اصل عدم علقه زوجیت جاری میشه و این زن رو از تحت ادله تحریم خارج میکنه ولی در شوابات حکمی اینطور نیست. در شوابات حکمیه اصول ترخیصی منافی با آن معلوم اجماله ولی در شوابات موضوعی اصول ترخیصی در اطراف جاری میشه. مطلوبه الان میشه یه زوجیت حکم وضعی دیگه شبهه موضوعیه مردد بین زوجی باشه ترخیص خود ترخیص آره دیگه ترخیص داریم این زوجیت داری یا نداره زوجیت حکم وضعیه شبهه موضوعی هست ببین این شخص این زن یا زوجه یا اجنبی دیگه حالا علم داریم من اینکه حالا متابقه نداره خالص نداره علم اون به این ببین این زن زوجه هست یا نیست موارد علم مجمالی حساب میشه دیگه مرتب دبین دو طرف یا زوجه است یا اجنبیه. علم مجمالی داریم به اینکه یکیش ثابت حالا کدومشه؟ شبه موضوعی هست قبل بدویه است ولی موضوعی هست بدویه است ولی موضوعی هست چرا؟ چون شکل از زوجه داره در بعضی از موارد این در بعضی از موارد شبهه در زوجیت حاصل میشه. بعضی از موارد حاصل نمیشه. در این مورد شک دارم. شک دارم که این زوجیت ثابتی ثابت چی بگیم؟ بگیم اصل عدم علقه زوجیت که اصل موضوع حساب میشه، اگه اصل عدم علقه زوجیت باشه، بنابراین تحریم ثابت میشه. به خاطر این زوجی پس اصل موضوعی میاد این رو از موضوع عدله تحریم خارج میکنه و اون عدله یعطا میشه به این پیدا نمیکنه و اگر حرمتی بوده حرمت ثابت چون ارتباط نداره ببین اصول موضوعیه دی موضوعیه حاکم بر عدلیه احکام اولیاست دیگه حکم خب اولی چیه جواب مباشرت با زوجه خب خوب اصل موضوع میگه زوجه نیست بنابراین من خارج شد این حکومت داره موضوع اون منتفی کرد دیگه زوجه نه ببین حکم مال زوجه است. یعنی جواز مباشرت و نظر مال زوجه است. هست یا نیست خب اصل موضوع میگین زوجه نیست بنابراین حکومت داره اصل موضوعی بر ادله اولیگه یه احکام حرام میشین نه اون تحریمی که من دارم میگم به معنای محرمیت هی آره اشتباهات و ذهنه ها. به معنای محرمیت ها. درسته؟ هم. به معنی بهرمیت. مع انه حکم مشاره به خروج مجلل اصلا موضوع تکلیف. حالا این تا اینجا نسبت به این قسمت. اما چه بحثی بر شنبه نوشتیم، این نیاز به تحقیق داره و اون اینکه در شوباط حکمیه اصول ترخیصی اخ میشه. اصل برایت جاری میشه کسی شبه درش نداره شبه حکمی بوده و اصل, اصل برایت درش جاری میشه اما در شبهات موضوعیه چرا بیاد اصل برایت جاری بشه شبه موضوعیه که شبه در حکم نیست شبه در موضوع. چطور علما آمدن قاعد شدن میگه شبهه موضوعیه مجرای اصل برایت حاله سؤال اینه که یکی از مسلمات اصول اگر شک در حکم باشه مجرای براید اگر شک در امتصال باشه مجرای احتیاط شبه حکمیه در شبهات حکمیه شک ما در حکمه نظام میگیم مجرای براید ولی در شبهات موضوعیه که مشهور قائل به براعت شک ما در حکم نیست ما حکمو رو میدونیم متعلقش رو نمیدونیم و مردده چرا قائل به براعت شدن همین دیگه چرا آم شده؟ برای چی آم بشه؟ مگه نمیگم براعت در موارد شک در تکلیف و حکمه در و باهات موضوعیه شک ما در حکم نیست حکم رو میدونیم رو این موضوع برگشت یعنی چی که این, موضوع میشه موضوع این برگشتی که میشه اینا درسته حالا یه شبههی اساسی بوده تو این صفحه که نوشتیم که چطور در شبهات موضوعیه اصل برای اتجاری میشه شبههیه شبهه شبه رو نوشتیم این صفحه آخر شبهه رو نوشتیم بعد راهندش چیه راهندش بله؟ شبهه من نگفتم خب همون رو میخوام بگم شبهه که معلومه در شبهه این بود اشکال این بود که در شبهات موضوعیه شک ما در حکم نیست خوب این اصل اشکال بود جوابش اختلف علام بر سه قول یک قول اینه که قاعدم به اینکه شک در شبهات موضوعیه برمیگرده به شک در تکلیف مطلقا که مسئله که خوب آقاین دقیقت کنه مستقی اینه که در شبهات موضوعی شک برمیگرده به شکی در تکلیف مطلقاً قول دوم قول محقق در در مجموع الفائدت و البرهان که در شبهات موضوعی شک شک در حکم برمیگرده به شک در شبهات موضوعی برمیگرده به شکی در مکلف به لذا قائل به احتیاط شده مطلقاً قول سوم، قول نائینی و شهیستر اینها قایله به تفصیل هم. گفتن شباهات موضوعی علاق اسمه. یعنی بعضی از موارد شک بر میگرده به شکی در تکلیف مجرای براعت میشه بعضی از موارد برمیگرده به مکلفون به مجرای احتیاط میشه و این رو یک زابطه نائینی ذکر کرده و یک زابطه شهیستر ذکر کرده مجموعاً میشه دو زابطه این دو زابطه در مقام ترسیم چهار قسم از اقسام شبهات موضوعیه یعنی شبه موضوعیه در واقع شده چهار قسم شبهات موضوعیه در قبال سایر شباهات خودش تقسیم میشه به چهار قسم که در این چهار قسم بعضی از موارد مجرای براعته بعضی از موارد مجرای احتیاطه این رو از این صفحات برای شنبه این بخونند و حلقه دوم 600 اینا رو داره و محقق ناهینی هم در همون جلد سوم صفحه 391 به بعد نوشته اینارو که خیلی مهمه ذابطه تمییز موارد رجوع شک در موضوع به شک در حکم یا شک در مکلفون به ذابطه ها رو بخونید و این جزبه هارم که نوشتیم اینا رو مقایین بخونن تا شمبه این